اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام علی نبی نعب آله تاهری خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم روز به خیر عرض میکنیم الله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار باشید و الله که به لطف الاهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور مانید. ما در مباحث قبلمون در قصیده ای که از آقای متنبی با هم خاندیم که در مح سیف و بود سه بیت انتهایی قصیده باقی موند که الان خدمت شما عرض میکنیم الا ایوه السیف الذی لذی لست مقمدا ولا فیه مرتابون ولا منه آسمون علا حرف تنبیه مثل علا این نهو حما صفحا علا به الله تتمین و قلوب یعنی آهای حواستون باشید درست شما ایها السیفو یعنی یا ایها السیفو یای حرف ندا الازید. صفت پسیف لست مقمدن توی کتاب ما هست لست مقمدن توی دیوان هست لیسه مقمدن لیسه مقمدن که لیسه باشه بهتره چون زمی آهد سله اون زمیری میشه که توی لیسه اسمشه مستتره و و زمیر آید سله زمیر قایب باشه هم کسیره هم قیاسیه او اونه. پس اون نسخه که علا ایوه از سیف و لزی مقمدن هستش که زمیر قایب حبه داخل لیسه آید است اون با قاعده بیشتر است و هم تر است که دیوان لعیس مقمدنه و لا فیه مرتابون یعنی و لعیس فیه مرتابون لا زایده است تحکیل این افیه لعیسه رو میکنه و لا فیه فیه از وجه خبر لعیسه است مرتابون هتو به جای مرتاب یعنی ولایزه فیه مرتاب ولا من ها و نگهداری هم در مقابل او نیست یعنی تو شمشیری هستی که اقمدهو او یعنی جعلهو فلقمد قمد یعنی قلاف مقمد یعنی قلاف کرده شده اسم مفعول قیمد یعنی قلاف اقمد یعنی قلاف کرد اقمد تو یعنی شمشیرم رو قلاف کردم. پس آهای شمشیری که به قلاف نرفته است، به غلاف نمی رود لیسه یعنی قلاف کردم، براش معنا ندار درست چرا میگه قلاف کردن براش معنا نداره غلاف نشده برای خاطر اینکه دائما از قلاف بیرون است و در مقابل دشمنان و لیس فیه مرتابن مرتاب یعنی شاک شک کننده ام. و هیچ کسی هم در این مطلب در این شمشیر شک نکرد یعنی کسی تا حالا در برش و کوبش و قدرت این شمشیر شک نکرد. ولا فیه ولا منح و آسمون آسم یعنی مانع یعنی حافظ و هیچ که هم نمیتونه حافظ و مانع باشه از این شمشیر یعنی که شب پنجره شو بگیره درست شد درست اسکوچیه حالا اسم این ممدوح چی بوده سیف الدوله از اسمش کمک گرفته و آدم شجاع قاطع مرنده و در همکوب رو تشکیل میکنم به شمشیر نزا گفته آهای شمشیری که لیس محمدا تو هیچ وقت در قلاف واقع نمیشی کسی تو رو قلاف نمی کن. تو همیشه در مقابل دشمنانی، ولا فیه مرتابون و کسی هم تا حالا در جرأت و شجاعت و مردانگی تو شک نکرد ولا منها آسمان و هیچ کسی هم مانه و حافظ و صد در مقابل تو نیست هستانیست هیچ که امتعه جلو تو, تو بگیر صفات به این صفات بیان خب نه این بیت ندا بود آهای کسی که اینطوری هستی آهای سیف و ای که شمشیری که چلیم حنی ان لذرب الهام والمجد حنی ان لذرب الهام و والعلا و راجیک والاسلام انکه سالم خب کسی که اصلا قلاف نمیشه همش مقابل دشمنان هستش شکی در این نیست که اون در مقابل دشمنانه و هیچ کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره میگه هنی ان انکه سالمان یعنی هنه هنی ان هنی ان جای حنا نشسته است فیل که جای فعلش میشه یعنی گوارا باد انکه سالمون این که تو سالمی م? مثل میگیم حنی ان لکل عیام. یعنی چی حنی ان لکل یعنی حنعت لکل ایام یعنی برای تو روزگار خوش باد. خوش باد روزگار برایت حنی ان انکه سالمون اینکه تو سالمی گوارا باد گوارا باد برکی لذرب الهام برای زدن سرها و المجد و برای مجد از و اولا و برای بزرگ واری ها و راجیک رجا یرجو یعنی امید بست را که یعنی برای کسی که به تو امید بس ولی اسلام یعنی برای دین اسلام یعنی که تو سالمی این مبارک باشد برای اینها برای زدن سر دشمنان برای مجد و عظمت بزرگواری ها و کسی که به تو امید بسته و دین مدین اسلام الهام اگر یادتون باشه گفتیم جمع خامست یعنی سر کاسه سر اولا جمع علیاست یعنی مرتبه علام اولا میشه المراتب با علا آلیه مرتبه هم انک سالمون انکه سالمون فایل هنیانه گفتیم که مفعول مستقه چایی پیدشتش شد بعضی هم جور دیگه معنا کردن هنیان رو حال گرفتن گفتن جای عاملش نشسته که ما اونو دیگه نگفتم خب یعنی چی؟ یعنی گوارا باد اینهایی که ذکر کرده ذرب مجد بلند ها امیدوار به تو اسلام این چیزایی که ذکر کرده گوارا باد اینها برشون چی بر اینها گوارا باد اینکه تو سالمی درست چرا گفته که سلامت تو سالم بودن تو گوارا باد بر اینها چون قوام و قول خودمون دوام اینها به توست اینکه تو سالمی مبارک باشد به این خان یعنی تو دشمنان رو بگو سر جهشون می سرگاهشون جدا باید. مجد خب معلومه مجد گوارا باد بر مجد که تو سالمی چون تو مجد و تحقق می اولا بلند مرتبگی ها گوار چون تو بلند مرتبگی ها رو به دست مید. همشون مالی بود. و راجی که کسی که به تو امید بسته گوار آباد بر او چون تو امیدش رو نامید درست شد؟ و گوار آباد وجود تو بر اسلام سلامت تو بر اسلام چون تو اسلام رو بگید عزت می برشید معلوم هست یا خواستی ندارد حنی آن، لکن حنی ان به زرب الهام و المجد و العلام و راجی که اسلام انک سالم خب این رو هم فهمید بریم سر بیت بهد میگه ولم اینطور میخونیم ولم لا یق رحمان و ما وقا ما وقا و تفریقه حامل به این بکر متعلق است به دائم، یعنی دائمون بگیر اون تفلیق مبتداست دائمون خبرش تفلیق مستر اضافه شده به ها فائلش تفلیق و هم ادا هام جمع هامه. یعنی سر ال ادا دشمنان ده. میشه سرهای دشمنان را میشکار خبست تفلیقهو و ادا تپلیقه و ادا قائم دائمون بکند تپلیقه یعنی اون شمشیر حامل ادا اینکه اون شمشیر سر دشمنان رو از تن جدا میکنه سرهاشون رو دائمون بکند دائم از همیشه نیست بکند این تفلیقهو زمیرش میخوره به رحمان بعد از زدن به شمشیر حالی میخوره به رحمان خداوند حالا ببینید چه توی مصره قبله مجای زمیر ذکریه و لم این لم لبه بوده ما به خاطر اینکه وزن شعر درست بشه لم میکنیم ساکر شده منباب ضرورت شعری بلا لما مثل لما تقولون مالا تفعلون م? لما چی بوده؟ لما لما مای استفخامیه اگه مجرور به حرف جر بشه حلفش میافته برای اینکه فرق باشه بین مای استفخامیه و مای موصوله این حلیف قصه مثل امایت سالون اما بوده ان ما و لمه که لم خوندیم به ما ضرورت و برای چه لایق رحمان و وقایقی یعنی نگه داشت. دو مفعولیه حفاظت کرد. برای چه حفاظت نکند؟ الرحمان خدای رحمان حد دو تیغه شمشیر داره. بعضیا ها شمشیرهاشون یه تیغه داره. یعنی مثل یه طرفش چیزه. م? اما شمشیر او دو یعنی از دو طرف تیزه این شمشیرهای بلند مثل شمشیرهای سامورایی ها یه حالت قوسی نیست این شمشیر دادی دو دم این طرف و اون طرفش کاملا تیز شده حد تیزه تیغه است هم نکه تیزیه شمشیر بلند میگه ای حدنگ یعنی شمشیر تو رو دو تیغه تو یعنی دو تیغه شمشیر تو چون تیغه شمشیر مهمه دیگه که خراب بشه دیگه کاری از شمشیر برد نمیاد میشه چوب. چوب دستی میگه چرا حفظ نکند خدای رحمان دو تیغه شمشیر تو را ما وقا. مدت زمانی که حفظ میکنه ما ماما. وقت این مامای مستریه است ظرفیه یعنی مدت وقایته تا جایی که خدا حفظ میکنه اشیاء خوب رو در وقتی که خدا چیزایی که مناسب هست و حفظ میکنه چرا شمشیر تو رو حفظ نکنه مثلا بگیم تا جایی که فلانی کمک میکنه به همه چرا به تو کمک نکنه؟ یعنی تا جایی که خدا حفظ میکنه اون چیزایی رو که بخواد برای چی در وقتی که خدا حفظ کرده اون چرا که میخواهد حافظ است برای چی حفظ نکنه شمشیر تو رو و تفلیقه و حالان که شمشیر تو و حالان که شمشیر تو و امر الهی خداوند شمشیر تو تفلیقه و شکافتن خداوند سر دشمنان رو دائمون بکن دائم به واسطه یه بگید. دوست. تو دست خدا هستی تو شمشیر خدا هستی خدا سر دشمنان رو سر کفار رو منافقین رو با دست تو از وسط دونیم نکدی فلق یعنی شکافتن فلق یعنی شکافت و تفلیح و حالا که شکافتن سر دشمنان دائمون بکر همیشه با توست خدا سر دشمنان را از تن به واسطه ای تو جدا میکنه حالا چرا خدا پس شمشیر تو رو حفظ نکنه در جایی که در وقتی که حفظ میکنه چیزهایی رو که در جهت خداست ما وقع. یعنی تا جایی که خدا میتونه حفظ کنه در وقتی که خدا حفظ میکنه چیزهای خوبا چرا شمشیدتو رو حفظ نکنه؟ شمشیدتو رو حفظ نکنه؟ از چی؟ از شر و بدی و شکستن و شکست خورده در حالی که خدا سر دشمنان را به واسطه تو از تن جدا میکنه سر دشمنان را به واسطه تو از تن جدا میکنه خب این قصیده تمام شد و ما این قصیده رو خوندیم بیریم سراغ قصیده بعد ما خب اون مده سیف و بود این قصیده که خوندیم این مده کافور اخشیدیست کافور اخشیدی سیف و دوله امیر بود امیر بود والی بود در حلب حلب همین جایست که الان در سوریه شما گاه میشه نامش رو این حاکم بود در حلب خب کافور اخشیدی حاکم بود در مصر. کافور یک شیری حاکم بود در مصر حاکم بود در مصر اما یه دسته اداره کافور کافور غلام بود کافور قلام بود کافور قلام بود قلام یک دلاک بود ولی چون هیکلمند بود و باهوش بود و غیره این رو فروختند اخشید پادشاه مصر بود این غلام رو خرید سیاه بود اسمش رو بودش بودن کافور لقب کافور چون متضاد به کافور سفید این اخشید اینو خرید این غلام رو در مصر اخشید پادشاه مصر بود و مصری ها مقابل و دوله بودن در حلب این دوتا با هم چل داشتند معلوم اخشید این غلام رو خرید کافور رو خوب خدمت کرد به اخشید از خودش جربزه نشون داد هوش و استعداد و شجاعت نشون داد اخشید این در واقع ندیم خودش کرد همراه خودش بود همی بعد هم دختر خودش رو به او داد داماد اقشید شد بعدم جای اقشید حاکمه بر مصر شد. یعنی یک غلام و برده اونم غلام یک کسی که در حمام کار میکنه حجام میگفتن حجامت اون مالکش. و این شغل در بین خود جز پستن این شغل ناسوسای جرود خوش می‌دادن و گفتن یاب نلحن چون خب یه موقع آدم غلامه ولی غلام یک کسی است که از پادشاهی بالاتر از غلام امیرالمؤمنین باشه فهمبر خب خودش عظمت است اما یه موقع غلامه یک کسی آدم پستیست است یا کسی که شغل پستی داره علام شیعه علام یه کسی که شغل پستی داره خب بعد همین اومد داماد اخشید شد و جای اخشید در مصر حاکم شد دومین است که آمد و حاکم شد سیف و مقابل این کافر متنبی با سیف و دوله همسه نسال بودن خیلی هم سیف و رو دوست داشت هر چقدرم هم سیف و رو میکنه از سروی اشتیاق مد میکنه چون دوست داره مد میکنه با قول خودمون مدهش از دل برمیاد میاد و به دل میشید ولی خب یه عده اومدن سعایت کردن چغالی کردن پیش سیف و دوله سیف دوله هم با متنبی برخورد کرد که دواتی رو برداشت و به طرف متنبی پرد کرد به سرش خورد یکران تو تالار خد دیدن متنبی هم گفت اگر با سر شکستن ما با سر شکستن ما امیر قشمش میشینه و خوشحال میشه ما به اونم راضیم بعد اومد بیران خب ولی چون پادشاه بود باید یعنی متنبی در دربار بود شغل که باید از این راه درآمدی داشت رفت پیش کافور یعنی کافور خواست پیش و رفت پیش کافور کافورم بهش خانه داد جا داد خدم و حشم در اختیارش قرار داد و این هم شروع کرد مده کافم بکرد حالا اگر مدهش رو در قصائد نگاه کنید موقعی که مده سیف و میکنه خیلی مثل همین قصیده که خوندی خیلی از ته دل میکنه میگه تو اصلا یاور اسلامی خدا خواست تو شمشیرش باشی و خیلی افتخارآمیز مدح میکنه دوست داره همش برای پول و گرفتن سره نبود اما وقتی رفت پیش کافور اونجا وقتی بعد پیش سیف و دوله وقتی مد میکنه کافور اخشیدی رو به بدترین دشمن دیگه به بدترین وچهش میکنه حجم کنه چون مدح حاکم خودش رو میکنه سیف و دوله و حجب مخالفش رو کافور ولی وقتی میره پیش کافور مده کافور رو میکنه اما حجو سیف و رو نمیکنه ممکنه گوشه کنایه بزنه که بی بیوفاست اون کسی که حق آدم رو نبینه و فلان و فلان اما نام نمیبره تصریح نمیکنه چرا؟ چون خب یک مقدار احترام به سیف داشت یکی اینم که فکر میکرد که خب اینجا دوام نمیاره تا آخر که نمیمونه یه روزی سیف دوله قدرش رو میفهمه دوباره برمیگرده پیش سیف دوله. اگر الان هر آنچه که به دهنش میرسه بگه روزی که بخواد بره پیش سیف دوله دیگه شرمنده است نمیشه جمعش کنی ولی اگر به شکل کنایه بگه به شکل مبهم بگه فردا اگر رفت اونجا میگه من منظورم تو نبود همینطور هم شد مدتی که کاپور خشیدی رو مرد کرد دلش برای سیف و دوله تنگ شد اونها هم چراغ نشون دادن برگشت پیش سیف و دوله و همینطور معذرت خواهی کرد و بعد هم منظور تو نبودی و متر سیف و دوله شروع پس ما شرایط این قصیده را برای شما بیان کردیم شرایط این وصیده رو برای شما بگو بیان کرد خب کاپو رشیرم براتون گفتیم کیست درست شو بدید که من قصیده رو برای شما بخونه شرح حال آی کافور رو هم من برای شما گفتم کفا که کفا بکد آن ان ترل و حسب المنایا یکن نه که امانیه بوده اشباع شده فتح شده امانیا امانیه غیر منصرف امانی جمع امنیه است امنیه یعنی آرزو کفا اینجا فعل لازمه کفا اگه لازم استفاده شه فائلش با بای زایده میاد مثل تو داریم کفا بالله شهیده یعنی کفه الله شهیدا داءا تمیزه دا یعنی مرض درد کفا که مثل کفا به الله شهیدن است خدا از جهت شهادت اینجا هم کفا به که یعنی چی؟ کافیست ترا فقط فرق اینه تو کفا به الله با باب از سر فائل در اومده کفا فعل لازمه اینجا با از مفعول درآمده، کفا فعل متعدیه کفا وقتی متعدی باشه به معنی اقناست اقنا یعنی بی نیاز کرد تو کرد یعنی اقنایی تو کرد ما میگیم حقوق کافی یعنی حقوق بی نیاز کننده یعنی دیگه نیاز نباشه تو بگی کار کن پس کفا بکه یعنی کفا کرد باز است یعنی کفایت کرد ترا بینیاز کرد ترا از جهت درد چی بینیاز کرد ترا از جهت درد انتر الموته شافیان این ترا به معنای تعلم است از افعال قروبه الموت مفعول اول شافیان مفعول تو. این انتر الموتشافیه فائل کفاست این که تو این که تو باور کردی مرگ را الموت شفا دهنده این که تو میگه خدای منو بکش مرگ منو برسو اه؟ این که تو راضیه به مرگ شدی و باور کردی که مرگ شفای توست شفا بکر می نیاز می کند تو را از جهت درد دیگه لزوم نداره کسی بگه آقا درد چیه چه دردی داری این انقدر دردش بالاست که آرزویه بگید مرگ میکنه برای این که تو بگیم دردمند هستی همین بس که تو مرگ را بگید دارو و شفای خودت فوق ان انتر الموت شافی و حسب المنايا حسب یعنی کافی و کفایت میکند منایا جمع منی است مرگ و کفایت میکند مرگ را اسباب مرگ رو کفایت میکنه چی بگید ان یکن امانیا اینجا اومدند بگو امنیه تو شدن آرزوی تو شدن یکنه سیره شیشومه مثل نه، این یکنه نونش نونه زمیر جمع موننسه مثل مبنیه ان یکنه امانیون اینکه هستند این ها بگید آرزوهای تو اسباب مرگ از هر شکلش که باشه آرزوی تو شده آرزوهای تو شده همین برای مرگ کفایت میکنه یعنی این شرف برای مرگه که مرگ اومده آرزوی آدمی مثل تو شده مرگ این افتخار براش بس که مورد آرزوی توست و درد هم همین بس و بی نیاز میکنه تو را از درد اینکه مرگ رو باور کردی شفا دهنده توست و حسب المنایا و با با با حسب المنایا بعضی میگن مبتدا انگکن نعمانیا خبر بعضا میگن حسب چون مشتق خبر مقدر ان یکن نعمانیات ها تحویل و میره مبتدای محفظ یعنی این که تو الان آرزوی مرگ میکنی خب همین نهایت شدت درد رو نشون میده دیگه لزومی نداره بگیم چه دردی داری دردی که شفای اون رو آدم مرگ بدونه این بالاترین درد دیگه دیگه دردی بالاتر از اون نیست که آدم مرگ رو بر این درد ترجیح و اگه مرگ سبب آرزوی آدم باشه مرگ بشه آرزوی آدم این نهایت بلاست همین کفایت میکنه کفایت میکنه مرگ رو اینکه مورد آرزو واقع شده برای تا خب این مشخص شد حالا این منظورش از کفا بکدائن کییه کفابکدان بعد این کوفره که نیست که نه مد کنه او رو این در واقع داره غزل رو با یک ابیاتی که ابیات است شروع می‌تونه شو ابیات غزلی شروع می‌مونه و منظورش از این خودشه اگر شاعر به خودش خطاب بکنه تو اصطلاح بدیع بهش میگن صنعت تجرید صنعت تجری یا صنعت تشخیص مثل سعد یا مرد نگونام نمیرافت خب چفا به که داعا <متحدث> انط آمانی المت شافیا و حسول المنا یا ان یاک نهامیا یکن نه اسم یکن است امایه خبر یکن است و اون علف فتح رو اشتوار کرده به خاطر قافهعللف <متحدث> <متحدث> شده شده اما خوب یا فهمید؟ هر حرف زائدی تو زبان عربی مفیده تأکیده. کفا با کفا كف فرقش در معنا اینه که کفا بکه داره تاکید میکنه یعنی حتما بینیاز میکنه تو رو بینیاز کرده از تو رو از جهت درد اینکه تو باور کردی مرگ شفای توست درست شد مورد خطاب قرار داده خودشو براساس تجرید که گفتم تو فارسی بهش تشخیص هم میگه خب و حسب البنایا انتکونن انیع کنن اما بریم سر بیت دوم پس گفت چی؟ گفت درد اگر به حدی برسه که انسان آرزو کنه مرگ رو دیگه بالاتر از اون نیست دیگه, دیگه نباید بپرسیم درد چیه این داره آرزوی مرگ میکنه فس بنابراین بالاترین درد و داره که مرگ و بر درد ترجیح میگه و مرگ رو هم همین افتخار بسش که مورد آرزو کسی سیمسته تاست تمنی تها لما تمنیت أَنْ تَرَى فعا ایا او عدو مدا جیا تمنیت ها کامی خوره به منایا یعنی تمنیت الموت آرزو کردی مرگ لما تمنیت وقتی که آرزو کردی انتری صدیقا اینکه ببینی دوستی را ف اعیا پس ممکن نشد اعیا یعنی اعجزه نشد عجر آمد گفتو خدایا میشون من یه دوستی ببینم یه کسی با ما بسازه دوستمون باشه نشون و اعیا درست شد او عدو و مداجی یا نشمنی ببینی چه تو دشمنی مداجی باشه مداجی یعنی دشمنیشو پنهان کنه پرده در نباشه میحیا بگو نباشه میگه تو آرزوی مد کردی وقتی که آرزو کردی اینکه ببینی بگو دوستی و نشد فهریا درست از محال شد گفت دوست ببینم نشد یا گفتی دشمنی داشته باشم که سرش به تنش بی مداجی باشه تو دشمنی بگه نامردی نکنه اونم نشد اونم یعنی او ادوب و مداجی هم فعجزه و فعجزهش میگه تو چه آرزوی من کردی موقعی که گفتی خدا یا یکی باشه که با ما دوستی کنه هیچ نیست یا یه دشمنی باشه نامردی نکنه اونم نیست دیدی که پس این دنیا قابلیت زندگی اعیا زیدون امرن اعیا زیدون عمرن یعنی عاجز او و فاء یعنی فاء پس محال شد نشد درست شد پس میشه آرزو کردی مرگ رو وقتی که تلاش کردی درست مرسی برسی به دوستی که خیلی درست حسابی دوست باشه فاعجزک کرد پس تو رو نامید کرد فاعیا یعنی فعجزه یعنی فعجزه کرد تو رو عاجز کرد او عدو یا گفتی یه دشمنی لاغل دشمنشی مرد باشه و عجزه کرد اونم پا نداد درست شد و وقتی که نه آدم دوست خوبی داره و نه دشمن به قول خودمون مردی داره یعنی دوست که اصلا نداره دشمنام هم همه نامد اینجا اگه ای آدم بمیره میگه چیه؟ ده. اینجا اصلا نمونه بهتره در واقع این بیت تفسیر اون دردیه که تو بیت بالا گفت گفت من یه دردی دارم که مرگو برا خودم شفا میبینم همین بس به نیاز میکنه منو از جهت درد اینکه من مرگ رو معتقدم شفا دهنده است مرگ هم افتخارش باشه که مورد آرزوی منه تو بیت اول بعد این مرگ و این دردی که آدم به خاطر او آرزوی مرگ می‌کنه رو توی بیت دوم توضیح می‌ده میگه چی میگه من مرگ رو آرزو کردم وقتی که آرزو کردم درست شد اینکه ببینم دوست خوبی رو ولی من از این دوست خوب عاجز کرد نشد این دوست من آجز شدم از به دست آوردنش از دستم رفت نبود یا گفتم دشمنی پیدا کنم مداجی باشه دشمن مدارا کن دشمن مرد که از پشت خنجر نزنه تو دشمنیش آدم باشه آه. اونم پیدا نکردم فه احجازم فه خب وقتی این طوره پس بهترین ایک آدم بمیره چون دشمنم اگر مرد باشه خیلی مهم امیر جوان بود یه جوان ترگن ساله ده. وقتی که امر ابن رو نظره سنش بیشتر بیس وقتی که امرد ابن رو پهلوان عرب بود کشت خواهر او چون هر کی آیوب میکشت این توی اسلام هم هست پیغمبر روایت داره من قتل قتیلا فلهو صلبو هر کسی کسی رو بکشه تو جنگ و جهاد اون همراه کشته شده قنیمتیه که به خود این میرسه شمشیدش، خلاه بودش، درهش اینا مال اون کسیه که کشته امیر وقتی عمرت قبل بود رو کشت که اون خیلی قلدار زمانش بود هیچی از بر بردارش برای خدا کشتو اینقدر عظمت داریم بعد خواهر عمر ابن و بود وقتی دید این رو گفت من برای تو مرزیه نمیگم چون تو به دست مرد کشته شدی کسی که بگو کوچکترین چشم داشت و به این وسائل قیمتی که تو داری نگاه هم نگرد میگه میشه دشمنی که اگه دشمنی کنه دشمنیش اصول داره مرام داره میگه وقتی دشمن با مرا میادن پیدا نمیکنه. دوسته بگو خوبییم پیدا نمیکنه اینجا مجبوره که مرگ رو آرزو کنه. مرگ اینجا شفاست. مرگ اینجا شفاست. بر شد؟ امش باست میشود خب تم نیته ها لام ما تم نیته انترا تم نیته انترا یا انترا مفعول تم نیته صدیقن مفقول تراست فعایا یعنی فعایا کر یعنی فعای جز تو از دیدن دوست عاجز کرد نزاشد نبود تمنیت همترا صدیقا فعیاد اتو به جای تمنیت یعنی فعیاد کرد او عدوون مداجیم اتو به جای صدیقا بازم فعیاد بازم نشد اینجا تمنیت ها اینجا تو آرزوی مرگو کردی اینجا تو آرزوی مرگو کاش این بود تمنیتها لما تمنیتها, تمنیتها دلیل و جواب است برای این لما یا این لما خودش ظرف به منای هین و دیگه شرطی نیست متعلق به تمنیتها یعنی تمنیتها هینه تمنیت انترا صدیقا تا ترکیب میبه بعضا میگن لما شرطی هست این تمان نیتا فیل شرطشه جزای شرطش به قرینه تمان نیتا ها حضر بعضا میگن نه این تمان نیتا ها فعل و فایل و مفهول. این لما زرخ متعلق به تمان نیتا این تمان نیتا انتران این جمله مزاخن علیه لما یه شرطی در کار زمیر تمان نیتا ها هم میخوره به نه المنایا که تو بیت قبل خب اون مرضی که ایشون مرگ رو در مقابل او ترجیح میداد مگه مرگ به داد انسان برس از این اسوب و غم و مرضی که داره اون چیه اینکه انسان نه دوست دارد نه دشمن مرد بیت بعد رو ببینی دشنگ میگه میگه ازا کنتن ان تعیش به زلتن به با به معنای معست یعنی معزلتن حال است یعنی زلیلن حال است از خواهر ترش یعنی زلیلن به زلتن یعنی معزلتن این جارمجل متعلق و عامل مقدر حال از برای تعیی شد یعنی زلیدن فلا تستجیدن ال اطاقل مذاکیا درست استجید یعنی انتخاب میکنی جید جید رو استجاده یعنی خوبش انتخاب کرد یستجید اتاق یعنی اسب های با جمع عتیق دوستو اسب های با جمع عتیق لغاتش یکی دوتا بگم که توی دیوان تستجیدن نست تستجیدن نست معنامی کردم براتون. تو لغتی که هست دوتا تا لغت رو میگم که شما بتونید هر دو رو بگید یاد بگیرید ببینید، یادم بگیرید که کدومش مثلا قشنگتره تستجیدن نه گفتیم یعنی چی؟ انتخاب کنی جیدش رو خوب شه. خب. علئ اتاق با نسخه دیوانه به جای حسام یعنی اسوان خوب. علم مذاکی شو یعنی اصل درجه یک خب حالا اجازه بدید من این رو معنا کنم براتون دو تا نسخه لام میگم بنویسی ببین کدورشون قشنگه میگه که ازا کنت ترزا بلا بذارید این بیت رو بخونم اول بیت بالا رو بخونم اذا کنت ترزا انتعیش به زلتن یعنی انتعیشه مفعول ترزاست ترزا هم خبر کنتست جملش اذا کنت ترزا انتعیشه به زلتن یعنی چی؟ یعنی وقتی که تو راضی شدی این که زندگی کنی به ذلت راضی شدی که به ذلت زندگی کنی انتقیشه به زلت فلا تستعدن فلا تستعدن استعده یعنی آماده کرد استعد یعنی چی بگید آماده کرد استعده استعده مثلا میگم استعدتوه استعدت توه یعنی چی یعنی هاولت ان اتخذ زو یعنی تلاش کردم اونو عده جنگ افزار خودم بگیرم م. پس چی میشه فلا تستعدن نه. پس آماده نکن الحسام الیمانیا حسام شمشیر الیمانی بگید یمنی چون بهترین نوع شمشیر شمشیر یمنی است میگه ازا کنت ترزا ان به ذلتن تو که میخوای تو سری خور زندگی کنی راضی شدی به زلت راضی شدی به اینکه ان زندگی کنی ذلیلن در حال ذله فلات استایدن پس آماده نکن شمشیر یمنی تو شمشیر یمنی بشه در شمشیر یمنی برای اون ده کسی ده؟ کسیه که میخواد شمشیر یمنی مال اون کسیه که میخواد میجنگه میخواد با عزت زندگی کنه آدم تو سری خور شمشیر مخواد چگاه؟ بهمیدیشه این فلا تسته جواب ازاست این ناهیه است چون فعل انشائی آمده جزای شرط شده فعل انشائی فاگه اله حسام هم مفعولشه اله صفت حسام حسام یعنی شمشیر برنده یمانیه هم یعنی منصول به یمن درست شد اینجا هم خودشو داره خطاب میکنه و هنوز, هنوز تجریده درست شد که تو دو اون دوتا بید قبلم با خودش داره صحبت میکنه در واقع و مخاطبا نفسه هم مورد خطاب خودش رو قرار داده گفته شمشیر رو کسی میگیره که بخواد زلت رو از خودش رد کنه و به عزت برسه وقتی تو راضی هستی که ذلیل زندگی کنی و اصلا دنبال عزت نیستی پس بسی چی میخوای آماده بکنی؟ پس چرا؟ پس آماده نکن فلا تستهید دنه پس هرگز آماده نکن شمشیر یمانی پس تو شمشیر یمانی آماده نتون تو که میخوای تو سری خوربه اون شمشیر یمانی تیز کردن و شمشیر به کمر بستن بالا اون کسیه که میخواد با عزت زندگی کنه ذلت رو در درهم بکوبه تو که دوست داری با ذلت زندگی کنی واسه چی؟ آماده کنی شمشیر یمانی هیچ وقت تو شمشیر یمانی آماده این بیتر اول باید دوبارمش رو نگاه کنید ولا تستتیلن ارمه بنابید ولا تستتیلن ارمه لقارتن ولا تستجیدن ال اطاق ال لغت داره که معنا کنم عین بیت, بیت قبل است استتانه استتانه یستتیل و استجاده یکیش از طول یکیش از جایید استطاله یعنی طلب طول کرد طلب بلند کرد استجاده یعنی طلب جایید کرد اختیار و طویل اینطوری بگیم. اختیار و طویل میشه استط... استطاله استطاله یعنی اختار طویلن بلند و اختیار کرد درست استجاده یعنی اختار جیدن جید و اختیار کرد ولا تستطیلن ارماه لغارتن یادتون هستش که ما گفتیم رماه جمع رومه یعنی نیزه خوب قاره هم یعنی حمله یورش اطاق جمع عتیقه یعنی اسب با نژاد اسب خوب میشه وقش موزاکی اسبی که به بلوغ رسیده جوان به بلوغ رسیده باشه یعنی میگن تمت اصنان ها دندوناش کامل شده از این نگاه میکنن دندوناش کامله نه پیر شده که بعض شکسته ریخته باشه نه هنوز اسب به بلوغ کامل نرسیده نگاه میکنن دندوناش هنوز کامل نشد اونی که همه دندوناش کامل و سالمه اون اسبیه که جوان دازه به بلوغ رسید این میشه موزاکی درست شد میشه المزاکیه جمع موزیکی مزاکی یعنی اطاق جمع عتیق عتیق یعنی با نجات جمعش اتاق یعنی اسوان با نژاد مذاکی یعنی اصفانی که تمت اصنانها اصفانی که کاملا به سن بلوغ رسیدن یعنی اصفی که الان وقتشه از نظر قدرت از نظر سرعت از نظر فرمان برداری از جوان الان شرایط از میگه معنای بیتی میشه طلب نکن نیزه های بلند رو برای یورش و انتخاب نکن نگیر اسبان با نژاد و کامل رو کی کی اینا انتخاب نکن این دنبال بهت قبل دیگه این ولات نه از اون فلا تسته نه اون شرط وصلش در میاد یعنی انگامی که راضی شدی به اینکه ذلیلانه زندگی کنی نه تو شمشیر لازم داری نه تو نیزه بلند برای حمله لازم داری و نه تو اسب خوب و درجه یک برای حمله و یورش و کرروفر لازم داری اینا مال تو نیست اینا مال کسیه که میخواد ذلت رو نابود کنه و به عزت برسه میخواد عزیز زندگی تو که میخوای ذلیل زندگی کنی بنابراین ولا تستا نه ولا تستا نه ولا تستا نه آه؟ تو که میخوای ذلیل زندگی کنی بنابراین نیست، ستا کار رو هرگز نکن یک آماده نکن شمشیر یمانی و دو نیزه های بلند اختیار نکن برا حمله و سه اسبان با نژاد خوب و جوان رو اختیار نکن اینها مال کسیه که میخواد زندگی عزیزانه کنه میخواد دشمن از پادر بیان دو که میخواد ناکریه دشمن کنی نشمشیر لازم داری نه لیزه لازم داری نه عصب کسی با زلیل که کاری ندارد زلیل تصمیم داره. با عزیز هست که به خاطر این که عزتش رو بخوان تحت تاثیر قرار بدند برخورد تو مخواهد زلیل زندگی کنی تو خب پس من این دیگه تو پتانک واسه چی مخواهد فکر میکنم فرد ولا تستدیلن نه اون نونه تحکیده اون لا لایناهی هست ار رماه مقعول شد لقارته متعلقه به لا نه. قاره یعنی لحجوم حجوم به دشمن تون تو نیزه نمیخوایی که تون تو نمیخوایی که دشمن حمله کنه. ولا تستجیدن یعنی ولا تختارن و اختیار نکن الاطاغ المذاکیات اسوام خوب و با نجات و در سن کامل و بلوغ یافته اینها به دردسا نمیخورد. علا کستتیلن نل ماهه و تستجیدن نل اعتاقن مزا کیا بیت بعد رو بگینید فما ینفعال اصدال حیاء من توا ولا تتقا حتی تکون زوا ریا. گفتش که شمشیر و نیزه و اسب خوب وقتی تو میخوای ذلیل زندگی کنی به کارت نمیاد زحمت نده شمشیر آماده کن انتخاب نیزه بلند کن برای حمله و انتخاب عصب خوب و کامل کن برای رفتن به جنگ و کرففل تو که میخوای زلیل زندگی کنی اینها به کارت نمیاد این قشنگی بود بعد میگه فماین فعول اسد اسد جمع اسد که جمعش اسد و اسد درست شو میگه فما فعول اسد الخياء و ما ينفعل اسد الخياء من از مشخص یعنی خجالت کشیدن اوست یعنی شیران توا یعنی گرسنگی میگه اگر یه شیری خجالت بکشه از این که بگه من گرستم مجهر میگه الهیا من توا میگن صورت خودشون رو باز سیلی صرف نگه میدارن میگه حالا اگه شیری خجالت بکشه از این که بگه من شیرم رو گرستم این فما فاول است فایده نمیده به شیر صورتشو با سیلی سرخ نگردره چه سودی داره برای شیر ولا تو تقا و اصلا ترسیده نمیشه از شیر یعنی ولا تو کسی برای شیر تره خورد نمیکنه حتی تکون زواریا یعنی اللا انتکونه این حتی ان به سه معنا میاد دیگه حتی ای که بعدش به مزاری میاد منصول بحن مقدر است یا به معنای الانه یعنی تا این که یا به معنای لعنه، یعنی برای اینکه یا به معنای الانه یعنی مگر اینکه اینجا حتی به معنای اللانه ولا توتقه و شیر ترس ازش نمیشه پرهیز از شیر واقع نمیشه از شیرها مگر اینکه اونها زواری باشن درنده باشن شیر خجالتی یا شیر افسرده و که از اینکه گشنشم هست خجالت میکشه که بگن آها که شیرم گشنه نه نتونستم کاری بکنم این میگه برای شیر ابوله نمیشه شیر باید حمله کند. اگه شیر حمله کننده نباشه لا توت تقا کسی ازش بگید درسی نداره به جای ازش استفاده میداره و لا توت حتی تکونه زباری اتتوا یعنی الجوع و توت تقا یعنی توه یعنی تخافو ترسیده نمیشه تو هزار و هزر نمیشه از شیر کسی از جلو شیر فران نمونه زواری یا جمع زاری یعنی درنده مفترز تو شو میگه شیر اگر بیشینه تو خونش، بشینه تو لونش و یاد بیرون از خجالت اینکه گرسنه، میمیره کشنه یه گیرش و اصلا کسی برش تره فوت نمیکنه. لا توت دو یک شیران ازشون ترسیده نمیشه. شه الا انتکون از اواریا مگر اون موقعی که درنده از خونه میزنه بیرون گشنه بیشه کار شکار؟ میگه آدم زلیل این چیزی گیرش نمیاد آدم زلیل چیزی گیرش نمیاد شیر هم باشه مثل شیریه که گرسته تو خونش گرفته تو دونش نشسته شیر. کسی هم از یه همچون شیری نمیترسه میگه هم کنیم شیره نداره مشکسی هستن؟ سوالش پس اگه شیر هستی یعنی شجاع هستی شیر هستی باید خصوصیت شیر هم داشته باشیم شنگگو فما است ینفع القسط است مفعول ینفعست فما ینفعو این ما مای استفهامیه است یا مای نافی است اگه ما ینفعو مای نافیه باشه میشه سود نمیده از شیر را خجالت از گرسنگی خجالتش از و ولا تو توا حتی تکون زبای این مای نافیه از یه گفتن استفخامیه است ولی استفخامیهش قشنگه میگه چه فایده ای میده از شیر را خیای از خجالت یعنی هیچ این قشنگ نیست میده چرا؟ به دلیل اینکه اگر این باشه اون موقع با ولات و اون دیگه نفیه دیگه مشخص شد این لا توتقا وقتی نفیه اونورا به نظر میاد به معنای لا ینفعل باشه نه استفهام به معنای نفی چه استفهام به معنای نفی هم باشه همین معنا رو میده و ما ینفعل است قال خیا من الدوا و لا توت تقا حتی تکونه یعنی شیر اگر شیری باشه که خجالتی و لان رو از کشنگی خجالت بکشه آم و جرأت برای سید نداشته باشه کسی ازش نمی ترسه؟ یا و خودش هم اگه گشنه میمیره می گرسنه می و موقعی از شیر حضر میشه و میترسن که اندگون زباری اینکه که درنده باشه خب فمای انفا ال استه اله حیا و مندتوا ولا تتقا حتی تکون زباری خب از اینجا به بعد دیگه شروع میکنه به مدح آقای کافور اقشیدی شروع میکنه به مد شروع میکنه به مد یعنی وارده پس این در واقع مقدمه قصیدش بود شد که با خودش صحبت کرد یعنی زمینه رو آماده کرد برای اینکه قصیده رو از این بیت ششم شروع میکنه به مدح آقای کافور اخشیدی که انشاءالله بمونه برای جلسه بعد موفق و معید باشید انشاالله. و سلالله و آنه نبینا و آله تاه اللهم و سلاله